قب بسم الله باب الایام اللتی سنت سیاموها باب بعدی روزه که سنت است روزه گرفتن آنها ایام اللتی سنت سیاموها روزهایی که سنت است روزه شان و یوم عرفه کفارت سنتین روزه روز عرفه سنت هست و فضیلتش هم کفاره دو سال هست سال قبل و سال بعد در روایت اومده که گناهاش کفاره میشه بعدا در پاورغی خب کفاره عرفه همون نهم ذلحجه هست هشتمو میگن ترویه نهمو میگن عرفه دهمو میگن یامو نحر نهمش نهمه ذلحجه نهم ذلحجه پس سنت هست روز گرفتنش البته برای غیر حاجی متجدید؟ چون برای حادی سنت نمیدونند حنفی احناف میگویند زمانی که روزه روز عرفه حاجی رو ضعیف کرد مکروه هست که اونو روزه بگیرد و همچنین روزه روز ترویه که همون هشتون زلحجه هست. مالکی هم میگن برای حاجی مکروه هست روزه روز عرفه همانطور که مکروه هست روزه روز ترویه حنابله گفتند مستحب است که حاجی روزه بگیرد روز عرفه رو زمانی که در عرفه شب ایستاد و روز نیست اما اگر روز در عرفه بود در این حالت روزه براش چیه مکروه ولی اگر یه چیزی دقت بکنیم ما از امروز اصلا دقت فقهای قدیم فقهای قدیم همیشه مقاصدی بودند جدیت میگم میتونی بری نگاه کنی میگن مثلا در حدیث مطلق اومده آقا این کار برای حجی مثلا درست نیست فقیه اومده گفته اگر به این خاطر باشه اگر به با اون خاطر باشه تا این که امام ابن حزم اومد و دیگه تبقه لفظ حدیث عمل می کرد خیلی تند بر علیه شون تو کتاب محله کتاباش حرف زد بر علیه فقه بر علیه امام مالک بر علیه امام خیلی تند حرف زده خیلی خدا من در رحمتش کند ولی زبان خیلی تند و تیزی داشته بر علیه فقه های بزرگوار بعد از اون فقه های دیگهی راهه فقهای های ظاهری رو رفتن ولی نه به اسم ظاهریه نه به اسم ظاهریه خب بریم جلوتر در هر صورت پس روزه روز عرفه سنت هست و کفاره دو سال هست و سام و یوم عاشوره کفاره تو سنته و روزه روز عاشورا کفاره یک سال هست البته بعدن اومده که تنهایی نباشه یا با تاسوعه باشه یا با روز بعدیش که 11 همه وصيام ايام و من شهری سنتون نه باره میگه و روزه ایام بیض هم سنت هست ایام بیض سیزده و چارده پانزه همه هر ماهو میگند برخلاف مالکیه که اونا مکروه دونستند محلی امام مالک خیلی از چیزا رو در این قسمت روزه ها مکروه دونست البته فقیق امام مالک هم خیلی قویه هاد تو قسمت معاملات و اینا مثلا ایلال احکامو بیشتر وارد شده اصلا این حکم چرا اومده؟ اخی در عبادت که دانسته نمیشه چرا مثلا ظهر رو چار رکت میکنیم ولی در معاملت راحت دانسته میشه قواعد کلی داریم اخی درش زرر نباشه غش نباشه فریب نباشه بعدن نصوص جزئی رو میاد ببینه با کدوم یکی از اون نصوص کلی تطبیق میکنه الال رو میاره پیدا میکنه خب در هر صورت بریم با پس عرفه و آشورا و ایام بیس که سنت هستند و هیه الثالف عشر والرابع عشر والخامس عشر خودش گفته که ایام بیس سیزده همو، چارده همو، و چارده هم و هستند و کذلکه سیامو سر شهر سر یا سره یا سرر یا سرر یا سرار, یا سرار, یا سرار. اه؟ اینا به یک معنی هستند و هو ثلاثت ایام من اولی گفته و سر شهر همون سه روز از اول ماه هستن بعضی از فقه ها سر شهر یا همون سر ماه رو وسطش دونستن و بعضی آخر ولی آخر جور در نمیاد چون آخرش مخصوصا در مثلا شعبان ممنوع اومده چه شده؟ خلاص سه روز از هر ماه مستحبه چه ایام البیز باشه چه جاهای دیگهش ایام البیز هم موارد شده در سنت و سرار و سرار و سرار که سه جور تلفظ میشه سه نظریه در, در موردش هست اول شهر وسط شهر و آخر شهر که امام شافی رحمت الله علیه در فقش آورده موردی که همون سه روز اول ماه. و یستحب و سیام شهر الله الاصم و هو رجب و مستحب بس روز گرفتن ماه اصم که همون رجب است. اصم به خاطر این بهش میگن که صدای شمشیری جگه شنیده نیم شدون از ماه های حرام هنه رجب اشم میگن اصم و وصیام و شهر صبر و هو شعبان و همچنین مگه مستحب روزه گرفتن ماه صبر که همون ماه شعبان هست برای تا روایت هست و این یسوم الاثنین و این استطاعه یکی دیگر از مستحبات از روزهای که مستحبه دو شمبه پنشمبه اگر توانست و کدلکه یستحب له انیوت بیا شهر رمضان به ست من شوال و همچنین مستحبه برای شخص که بعد از رمضان شیش روز رو از سوال چکار بکنه؟ روزه بگیره این هم در نزه ایمه سلاسه مستحب هست ولی مالکیه گفته هست اگر شخص روزگیرنده از مثلا اونایی باشه که مردم بشه اقتدا میکنه مثل مجتهدین در این حالت میگه مکروه زیرا یه موقعی این عقیده پیدا نشه در میان مردم که مثلا این روز روزش واجب هست اه؟ و همچنین متصل به یام الفطر نباش خلاصه و همچنین پی در پی گرفته نباشه پس این فقه های میگن سنت جز امام مالک که در بعضی از حالات و بر بعضی از غرزها اومد اینو مکروه دانست که خب این دیگه برداشت امام مالک و اگر اونجا مطلق میاد پس ما روزهایی رو که روز در سنت بود رو با هم خوندیم أما باب الأيام التي نهي عن صيامها روزهايك ناهي شده أز روزها قرفتني صوم يوم الفطر روزها روز فطر ويوم النحر روز إيد قربان حر دو إيد وأيام التشريق أيام التشريق يعني سر روز بعد إيد قربان وأيام التشريق الثلاثة حرام. لا يصح فيها فرض ولا تطوع ببين جمله رو كامل بخورن بهتر ميگه يوم الفطر ويوم النحر و التشريق الثلاثة حرامون صوم مبتدائي حرام خبر شه ميگه روزه يه روز فطر روز النحر أيام التشريق الثلاثة حرام, حرام, روز روز التشريق حرام مي باشند. لا يصح فيها فرض ولا تطوع صحيح نيست در نافلة. پس یه سی تا شدن؟ ولی در منهجی که من نگاه کردم روزهای حرام و بیشتر اعلام کرده بود مثلا یه اید فطر و رو بیان کرده بود یا متشریق آورده بود یا مشک آورده بود مگر این کلبته یا مشک شخص روزه قبلیش باش موافق باشه بود با سر روزه نصف دوم شعبان آورده بود بعدم گفته بود که یا مشک که نصف دوم شعبان حرام نیستن برای کسی که عادت روزه دار باشه یا این که ما قبل اول شعبان رو هم روزه گرفته باشه در این حالت میگه حرام نیستن ولی اینا هم جز حرام ها در فقه منجی آورده بود پس اینا که خب اکثر فقهان زرشون اینه که یوم الفطر و یوم النحر و یوم التشریق حرامه و یک صوم و یوم الشک ایشون امام مواردی رامان طلاله میگه ما کروح هست روزه یوم الشک الا این یصله بما قبله مگر این که یوم الشکلو وصل کنه بما قبل البته بما قبلی که وصل به بما قبل, قبل نیمه اول شعبان یعنی نیمه دوم به بعدش دیگه نباش پول اون موقع استقال رمان حسصابش میکنه خیلی ها او یاف قسم یاکان یاصبحوع قبلهغلله یا اینکه اون رو... یا مشکی که روزش گرفته با... موافق با روزه هایی باشه که قبلا اون روزها رو روزه میگرفته مثل دوشنبه مثل پنجشنبه مثل ایام ال... اه... بله مثل دوشنبه و پنجشنبه و این چیزها یا مثلا یه روز در میان روزه گرفته قبلی نه از این ساائل با انسان تطوان جزهو اگر تتوان میگه روزه اش گرفت کافیست براش و انسامهو او نظر او قضاین اعتده به اگر از نظر یا قضاون روزه گرفت حساب شمارده میشه و ان اگر می البته میگه خناهکار هست ولی حساب میشه میگه بس یومو شکو نمیتونه بیاد روزه بگیره اگر هم گرفتش اصا یک را حسیام و یام الجمعه مکروه هست روزه روز جمعه باله. البته روز جمعه رو زمانی مکروه میدونن که به تنهایی باشه اما اگر یک روز با ما قبلش باشه یا یک روز با ما بعدش باشه مشکلی نداره خب علت همه ورده ببین چقدر مقصدگره بودن میگه و یکره و سیام و یام الجمع ادادا اوفا ان قدور الجمع میگه مکروه هست جمعه زمانی که ضعیف باشه از حاضر شدنه جمعه خب پس جمعه به تنهایی فقه ها مکروحش میدونن و همچنین شنبه ها و همچنین شنبه ها جمهور فقه ها مکرو میدونن زمانی که تنها باشه بعضی گفتن نه اصلا به هیچ حالت نباید شنبه اشکار کرد حتی اگر مثلا عرفه درش افتاد حتی اگر دو شم... مثلاً حتی اگر درش ایام بیز افتاد خب ولی این کال قال, قال حقیقتا زعیفیه این قول که شنبه به هیچ وجه نمیشه روز گرفت قاری صحیح صحابی دارین پیغمبر بهش گفت روز کمتر بگیر تا اومد یک روز در میان رو پذیرفت مسلماً در این روزای یک روز در میانش شنبه می‌گرفت شنبه چی میشه تا آخر عمرش پیغمبر فوت کرده این صحابی یک روز در میان چه گرفته 100 درصد شنبه درسته شده پس قول جمهور فقه های قدیم شیخالبانی اومده گفته که نه در هیچ وجه چون اونجا حدیث البته ظاهرش همینو میگه ولی مبالغه هست ولی چه هست؟ مبالغه هست و اگر بگیم مبالغه نیست با خیلی از روایت دیگه در تضاد میشه یعنی خیلی از, از روایتو به هم میزنی خیلی از مسائل چکار میکنه؟ پس روزه روز جمعه مکروه هست میگه زمانی که ضعیف باشه سبب زوفش بشه از حضور جمعه و یک روه سیام و دهر کلیه و همچنین سیام الدهر, الدهر پی در پی گرفتن الا لمن من عليه علیه مگر اینکه که استمرار داشته شخص برش اذا تجافه البته ایام التحریم البته زمانی که ایام تحریم روزه نگیره مثل دو اید و ایام تشریق و ایناره پس روزهایی رو که مکروه بودند یا حرام بودند در این قسمت آورده بود و روزهای رو که سنتم بودند آورده بود